ای چرخ فلک خرابی از کینه توست، بیداد گریشی به یه دیرینه توست، ای خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست. این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت، چون آب به جوی بار و چون باد به هرگز قم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامد آمد از روزی که گذشت. آن دهل گران به هارز کانی دگر است، وان دره یگانه را نشانی دگر است، اندیشه این و آن خیال من و توست، افثانه عشق از زبانی دگر است. امروز که نوبت جوانی من است، نوشم از آن که کامرانی من است، ای بش مکنید تلخ است، خوش است، تلخ است، از آن که زندگانی من است.